فصل ششم بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت. و वैद्य زیادی که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فسح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و دید زیادی را دید که به طرف او نیاین، از فیلیپوس پرسید، از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورن؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او میدانست چه باید بکند. فیلیپوس پاسخ داد، سه هزار ریال نان هم کافی نیست که یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت پسر بچهی در اینجا هست که پنج نان جو و دو ماهی دارد ولی آن برای این عده چه می شود؟ ایسا گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود. پس مردم که در حدود پنج هزار مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته، خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود مایی ها را نیز همینطور، هرقدر هر قد خواستند تقسیم کرد وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود پس شاگردان آنها را جمع کردند و دوازده سبد از خرده‌های باقی مانده آن پنج نان جو پر نمودند وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها میخواهند او را به زور برده پادشاه سازند از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناهوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود یک فرسنگ جلو رفتن، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم میزنند و به طرف قایق میآید. آنها ترسیدند. اما عیسی به آنها گفت: من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که به جز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود بلکه شاگردان بدون عیسی رفتند ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند سوار این قایق ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند به او گفتند ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید به علت معجزاتی که دیدید نیست که به دنبال من آمده اید بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید برای خوراک فانی تلاش نکنید بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد زیرا که پدر او را تعیین کرده است آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می انجام دهیم ایسا به ایشون پاسخ داد آن کاری که خدا از شما میخواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید آنها گفتند چه مجزه نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردن و چنانکه کتاب مقدس میفرمایید او از آسمان به آنها نان عطا فرمود تا بخورند عیسی بانان گفت یقین بدانید که آن موسا نبود که از آسمان به شما نان داد بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می‌کند زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می‌بخشد به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده عیسی با آنها گفت من نان حیات هستم هر که نزد من بیاید، هرگز گرست نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد، هرگز تشت نخواهد گردید. اما چنان که گفتم، شما با اینکه مرا دیدید، ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به من که به کسی را که پیش من بیاید، زیرون نخواهد و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم بلکه در روز باسپسین آنها را زنده کنم زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را میبیند و به او ایمان میآورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد پس یهودیان شکایت‌کنان به او اعتراض کردند زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان ناظر شده است آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه گوید من از آسمان آمدم عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید هیچ کس تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز پسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است. همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می البته هیچ کس پدر را ندیده است. فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید. کسی که به من ایمان می‌آورد حیات جاودان دارد من نان حیات هستم پدران شما در بیابان من را خوردن ولی مردند اما من درباره نانی صحبت می‌کنم که از آسمان نازر شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی‌میرد من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است هر این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان میدهم یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختند و می میگفتند چگونه این شخص میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز باز پسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا میخورد و خون مرا میاش آمد، در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده، مانند آن نانی نیست که پدران شما خوردن و مردن، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسهی در کفرناهون تعلیم میداد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگام که این را شنیدن گفتن این سخن سخت است چه کسی میتواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت میکند با آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود سود میکند چه خواهید کرد؟ روح هست که حیات میبخشد ولی جس فایده ای ندارد سخنانی که به شما میگویم روح و حیات است ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد میشناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتن و دیگر با او همراهی نکردند آن وقت عیسی از دوازده حواری پرسید آیا شما هم خواهید مرا ترک کنید شمون پتروس در جواب گفت ای خداوند نزد کی برویم کلمات حیات جاودانی نزد تو است ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی ایسا پاسخ داد، آیا من شما دوازده نفر را بر در حالی که یکی از شما ابلیسی است؟ این را درباره یهودای اسخریوتی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن دوازده حواری بود، قصد داشت ایسا را تسلیم.